اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا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 و آن را مایه هدایت برای بنی اسرائیل گرداندیم و فرمودیم که جز من کار سازی برمگوزینید. لریت من حملنا معنوح اینهو کان ای فرزندان کسانی که با نوح بر برکشتی سوار کردیم به راستی او بنده ای شکر گزار بود. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا فِي الأرض مرتين، لا تفسد مرتين ولا كبيرا. و ما به بنی اسرائیل در کتاب تورات بحی کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و بر تریجوی و تقیان بزرگی خواهید نمود فَإِذَا فا وعده وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا وَأُولِي بَأْسٍ شَدِید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 و شما را با اموال و فرزندان یاریتان کنیم و تعداد نفرات شما را بیشتر از دشمن گردانیم این احسنتم احسنتم لأنفسكم وإن و فلها فإذا جاء وعد الآخرة لیسوم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 إن هذا القرآن <سؤال> یهدیلی لتی هی اقوام ويبشر یبشر المؤمنین <سؤال> و یبشر الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا بیشک این قرآن به راهی آن استوار ترین راهاست هدایت می کند. و به مؤمنانی که کارهای شایسته انجام می دهند، بشارت می دهد که برای آنها پاداش بزرگی است. و, لا لهم و این که برای کسانی که به آخرت ایمان ندارند، عذاب دردناکی را آماده کرده ایم. و الإنسان الانسان به دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا و انسان بدیها را می ها را طلب می کند و انسان همیشه عجول است وجعلنا الليل اللیل و النهار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 وكل انسان الزم طائره في عنقه و نخرج له يوم القيامه كتابي القاهم شورا فهر انساني اعمال خير و شر شرای در گردنش آویخته این و روز قیامت کتابی برای او بیرون می آوریم که آن را سرگشوده می بیند اقرأ کتاب که کفا بی نفسی کل یوم علیک حسیبا و به او می فرماییم کتابت را کافی است که امروز خود حساب گره خیش باشی من ازتده فا اینما یهتدی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 یک قريه امرنا مترف فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا هنگامی که بخواهیم دیاری را نابود کنیم به مترفین آنجا فرمان اطاعت می‌دهیم پس چون در آنجا به فسق و فساد برخواستند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 و کافی است که پروردگارت نسبت به گناهان بندگانش دانای بیناست من که یرید العاجلت عجلنا له و فی همان شاؤ لمن نريد. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا هر کس که زود گذر را بخواهد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 كل من مدها اولائي وما اولائي من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا هر يك از اینان و آنان از عطای پروردگارت کمک می‌دهیم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 و از این هم بیشتر است لا تجعل مع الله آخر هرگز معبود دیگری را با الله شریک قرار مده که آنگاه نکوهیده خار خواهی نشست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 پروردگارا به آنان رحمت آور همان گونه که مرا در کودکی پرورش دادند ربکم اعلم بما في نفوسکم ان تکونو صالحین فانه کان للوابین غفورا پروردگار شما به آنچه در دل‌هایتان است آگاهتر است اگر صالح باشید بی او برای تو به کنندگان است و قرب حق مسکینا و ببینی ولات بلرت ت و حق خویشاوندان را بپرداز و همچنین حق مسکیین و در راه مانده را بپرداز و هرگز اطراف نکن.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 ما تعرضا عنه مبتغى رحمه من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا هرگاه بهرگاه امیدوار رحمت و گشایش پروردگارت باشی از آنان اعراض کنی پس با گفتاری نرم با آنان سخن بگو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 ان رَبك يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا پروردگارت روزی را برای هر کس که بخواهد گشاده و یا تنگ می‌دارد بیگمان او به بندگانش دانای بیناست وَلَا تَقْتُلُوا ولكم خشيتِ لكن نحنون جوقهم وائياكمِ قهم ك ن خط كبير و فرزندانتان از ترس تنگ دستی نکشید ما آنها و شما را روزی میدهیم به راستی کشن آنها گناه بزرگی است ولا تقابل بینم اننه كان فاحشة و فساء سبيلا فنزيدی که زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد راهی است و لا تقتلوا نفسا التي حرم الله الا بالحق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 پس در کشتن اصراف نکند. بیگمان او مورد حمایت است ولا تقرب مال اليتیم إلا بالتی هی أحسن حتی یبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا و به مال نزدیک نشوید جز به روشی كه آن بهتر است تا آنکه به حد بلوغ و رشدش برسد و به عهد خیش وشا کنید، بیگمان از عهد سوال می شود. و اوفو الكيل اذا کلتم و ذنوب المستقيم المستقیم، ذلك خیر و احسن تأویلا. و هنگامی که پیمانه می کنید، پیمانه را کامل و تمام دهید،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 بدون شک گوش و چشم و دل هر یک از اینها از آن باز خواست خواهند شد ولا مرحا انك لن ولن و در روی زمین با تکبر راه مرو بی گمان تو نمیتوانی زمین را بشه کافی و هرگز در بلندی و قامت به کوه ها نمیرسی كل ذلك كان عند همه این کارهای ذکر شده بدی و گناه آن نزد پروردگارت ناپسند است مما من, ما إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم مدحورا. این احکام از آن حکمت است که پروردگارت به تو فرستاده و هرگز معبودی را با خدا قرار نده که نکوهیده هیده مترود در جهنم افکنده می شوی اف اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکه اناثا انکم لتقولون قولا عظیما پروردگارتان برای شما پسران برگزید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 سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا <تسجد> او منظف پاک است و از آنچه آنها میگویند گویند بسی برتر است <تسجد> تسبح له السماوات السبع والارض ومن من فیهن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 ولیکن شما تسبیح آنها را در نمی‌یابید بیگمان او بردبار آمرزنده است و اذا قرحت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا ای هنگامی که قرآن بخانی میان تو و میان کسانی که به آخرت ایمان نمی آبرند پرده ای پوشیده قرار می دهیم و جعلنا علی قلوبهم اکنتا این یفقهم و فی آدانهم و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 ما داناترین به چه منظور به آن گوش فرامی دهند و نیز هنگامی که آنان نجوا می کنند آنگاه که ستمگران میگویند شما جز از مردی که جادو شده پیروین نمی کنید عمر کیف ضرب لك الامثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبیلا بینگر چگونه برای تو مثلها زدند پس گمراه شدند لذا نمی توانند راهی به سوی حق بیابند و, ا اذا كنا عظاما و, ا خلقا جديدا. و کافران گفتند آیا هنگامی که ما استخوانهایی پوسیده و پراکنده ای شدیم آیا دیگر بار با آفرینش نشه تازه ای خواهیم شد؟ قل کونو او حدیده بگو سنگ باشید یا آهن او خلقم من ما یکبرو فی صدورکم فسيقولون من الذي هر مخلوقی كه در خاطرتان بزرگ منمايد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 يوم بحمده وتظنون إلا إلا قليلا. روزی که خداوند شما را از قبرهایتان فرا میخواند پس شما هم سپاس گویان دعوت او را اجابت می کنید و می پندارید جز مدت کوتاهی در دنیا درنگ نکرده اید و قل لعبادی یقول الّتي هي احسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنس عدو مبين. ابی بن دیگر نمیگو با یک دیگر سخنی بگو یعنی که آن بهترین باشد. بیگمان شیطان میان آنها فتنه و فساد میکند به راستی که شیطان دشمن آشکاری برای انسان است ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك على الهم وكيلا پروردگار شما به حال شما داناتر است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 پروردگار تو به حال هر کسی که در آسمانها و زمین است داناتر است و به راستی ما بعضی پیامبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم و به داوود زبور عطا کردیم قلدعو الذین دعمتم من دونهی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویله ای پیامبر بگو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 و رحمته و عذابه این عذاب رب كان محذورا کسانی را که کافران آنان را میخوانند خودشان به سوی پربرد گارشان وسیله تقرب می که کدام یک از آنها نزدیک ترند و به رحمت او امیدوارند و از عذابش میترسند. بیگمان عذاب پروردگارد همواره ترسناک است وإن من قریة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القیامة أو معذبوها عذابا شدیدا كان ذلك في الكتاب مشكورا و هیچ آبادی و قریهای نیست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 ذالووآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخویفا و هیچ چیز ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان آن را تكذیب كردند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 قنالِمَنائكتجد قال و به آور چون به فرشتگان گفتیم برای آدم سجد کنید. پس سجده کردن جز ابلیس که گفت آیا برای کسی سجده کنم که او را از گل آفریده قال ارائیت كه هادا الذي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَإِنْ اَخْخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنْ لَأَحْتَنِكَنْ نَدُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا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 خداوند فرمود برو پس هر کس از آنان از تو پیروی کند بی تردید جهنم کیفر شماست که کیفری کامل است و اتتذید من استطعت منهم بصوتك واجلب و اجلب عليهم بی خیلک و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 پس چون شما را به خوشی نجات دهد روی میگردانید و انسان بسیار ناسپاس است. افامن تم ان يصيب بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا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 فَيُغْرِقَكُمْ آیا از آنکه بار دیگر شما را به دریا بازگرداند سپس توند باد کوبنده ای بر شما بفرستد آنگاه شما را به کفرتان غرق کند ایمن شده اید سپس در برابر ما باز خاص کنند نیابید ولقد كررنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا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 و من اوتی کتابه بیمینه فا اولائی که یقرعون کتابهم و به یاد آورید روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان قایشان پس کسی که نام اعمالش به دست راستش داده شود پس اینان نامشان را با شادمانی می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 و این که دول یفتنون که عنیل لذی اوحینا ایلیک لی تفتری علینا غیره و ایزا لی اتخذو که خلیلات ای پیامبر نزدیک بود مشکان تو را با بسفسه های خود از آنچه بر تو وحی کردی منصرف کنند تا غیر آن را به ما نسبت دهی وانگاه تو را دوست خود بگیرند و الاء ثبتناك لقد ما تو را ثابت قدم نمی کردیم به راستی نزدیک بود اندکی به آنها تمایل کنی اذا لا ك ضعف الحياه و ضعف الممات ثم علينا اگر چنین میکردی، آنگاه دو چندان عذاب در زندگی دنیا و دو چندان عذاب بعد از مرگ به تو می‌چشاندیم سپس در برابر ما برای خود یاوری نمی‌یافتی و این که یستفزون که من الأرض یخرجو که منها و ایذن لا یلبسون خلافک الا قلیلا و نزدیک بود با مکر و توتعه تو را از سرزمین مکه بلغزانند تا تو را از آن بیرون کنند و اگر چونین میکردند آنگاه پس است تو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 اقیم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق اللیل و الفجر، این قرآن الفجر کان مشهودا. نماز را از زوال آفتاب تا تاریکی شب بر پادار، و نیز قرآن فجر را بیگمان در هنگام قرآن خواندن در نماز فجر فرشتگان حاضر آیند،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 و از سوی خود حجتی یاری کننده برایم قرار بده وقررج الحق زن قالبقن این الباف زهقا و بگو حق آمد و باطل نابود شد بیگمان باطل نابود شدنی است.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 قل كل ينعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن واهدا سبيلا اي پیامبر بگو هر به روش خود عمل میکند پس پروردگارتان به کسی که او هدایت یافت است داناتر است و يسالونك عن الروح قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا من مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا از تو درباريه روح سوال ميکنند بگو روح از فرمان پروردگار من است و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است شنا لا نذهباً نه بالللی او حینا لا تجد دولك بینی ع وکیلا و اگر بخواهییم آنچه را که به تو وح کرده ایم از سین ات میبریم آنگاه در برابر ما برای خود هیچ کار سازی نخواهی یافت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 قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ای انبر بگو اگر إنسو جن همگی گردایند بر آنکه همانند این قرآن را بیاورند هرگز همانند آن را نخواهند آورد هرچند برخی از آنان یاور برخی دیگر باشند ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فابا اكثر الناس الا كفورا و به تحقیق ما در این قرآن برای مردم هر مثلی را گوناگون بیان کردیم. پس بیشتر مردم جز ناسپاسی را قبول نکردند. وقالوا لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الارض و گفتند ما هرگز به تو ایمان نمیآوریم تا اینکه از زمین چشمهای برای ما جاری کنی. او تكون لك جنت من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها یا باقی از نخل و انگور داشته باشی، انگاه نرها در میان آن به خوبی جاری سازی، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه في قبيله يا آسمان را آنچنان كي ميپنداري پار پاره بر سر ما فرود آوری یا خداوند و فرشتگان را روبروي ما بیاوري او يكون لك بيت من لخرف او تبقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا ورسولا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 و مردم هیچ چیز باز نداشت از آنکه ایمان آوردند هنگامی که هدایت به سوی آنان آمد مگر اینکه گفتند. آیا خداوند بشری را به عنوان پیامبر فرستاده است؟ قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملک الرسوله ای پیامبر بگو اگر در زمین فرشتگانی بودند که با آرامش راه می‌رفتند مسلماً از آسمان فرشته‌ای را به عنوان پیام بر بر آنها نازل می‌کردیم. القف بالله شهیدا بینی و این اننه کان بعباده خبیر بصیرا ای پیام بر بگو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 و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیم و بکمم و مأواهم جهنم مأواهم جهنم و ما خبت زدناهم سعیرا و هر را که خدا هدایت کند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 ذالك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أذا كنا عظاما ورفاتا أينما لمبعوثون خلق جديد این کیفر آنهاست به خاطر اینکه به آیات ما کافر شدند و گفتند: آیا هنگامی که ما استخوانهایی پوسیده و پراکند ای شدیم؟ آیا دیگر بار با آفرینش تازهی برانگیخته خواهیم شد؟ أولم يروا أن الله الذی خلق السماوات والأرض قادر على أن یخلق مثلهم وجعل لهم, لهم أجلا لا ریب فيه فأبا الظالمون إلا كفورا آیا نمیدانند كه که خداوندی كه آسمانها و زمین را آفریده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 ولقد أتينا موسى تسعة آيات بينات، فسأل بني إسرائيل إجاههم، فقال له فرعون، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً. و به راستی ما به موسی نه معجزه روشن دادیم پس ای پیامبر از بنی اسرائیل بپرس آن زمان که موسی به سوی آنان آمد فرعون به او گفت ای موسی گمان میکنم تو سهر شده ای قال لقد ما انزلها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 وقلنا من بعد بني اسرائیل تسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم و بعد از هلاکت او به بنی اسرائیل گفتیم در این سرزمین ساکن شوید پس هنگامی که وعده آخرت فرا رسد همیشه شما دست جمعی خواهیم آورد. و بالحصّ وبالحق نزل و ما ارسلنا الا مبشرا مبشر و نذیرا. و ما این قرآن را به حق نازل کردیم. و به حق نازل شد و تو را ای پیامبر جز بشارت دهنده و هشدار دهنده نفرستادی و قرانا فرقناه علی الناس علی تنزیلا و قرآنی که آیات و سوره هایش را جدا ساختیم تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی فان را تدريج نازل کرديم قل امنو به او لا تؤمنو ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلا عليهم يخرون يخرون للاذقان سجدا بگو خواه به آن ایمان آورید یا ایمان نیاورید بیگمان کسانی که پیش از آن به آنها دانش داده شده هنگامی که آیات قرآن بر آنها خوانده می شود سجده کنان به رو در میافتند می گویند سبحان ربنا ان کان ربنا منزه است پروردگار ما که یقیناً بعدهایش انجام شدنی نیست. و اخِرُونَ لِلاذقان يبكون ويزیدهم خشوعا و آنها گریکنان برود در میفتند و تلاوت این قرآن بر فروتنیشان میافزاید. قل الله أو ادعو الرحمن أياما تدعو فله الاسماء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا بگو الله را بخوانید یا رحمان را بخانید هر کدام را بخانید پس فرقی ندارد برای او نام های نیکوست و نمازت را نزیاد بلند بخواند و نا آن را خیلی آهسته بخوان و میان آن دو راهی برگزین وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيٌ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِیرًا و بگو ستایش برای خداونده است که فرزندی برای خود برنگوزید و او را در فرمان روایی هیچ شریکی نیست و به خاطر ناتوانی سرپرستی برای او نیست و او را به شایستگی بزرگ به شمار. بسم الله الرحمن الرحیم به نام بنده بخشنده مهربان الحمد لله الذی انزل على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا حمد و سپاس مخصوص خدایی است که بر بنداش کتاب قرآن را نازل کرد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 تابت کاران را از عذاب سخت او بیم دهد و مؤمنانی را که کارهای شایسته انجام میدهند دهند دهد که پاداش نیکویی برای آنهاست همان بهشتی که در آن خواهند ماند و, و نیز کسانی که گفتند خداوند فرزندی برای خود برگزیده است بیم دهد. ما لهم بهی من علم ولا لآبائهم کبرت کلمه تخرج من افواههم این یقولون الا کلمان.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 اگر به این سخن قرآن ایمان نیاورند جعلنا ما على لها ما آنچه که روی زمین است زینت آن قرار دادیم تا آنها را بیازماییم که کدام یکشان بهتر عمل میکنند. و اینا لجاعلون ما علیها جرزا. و ما سرانجام آنچه که روی زمین است به خاکی هموار و بیگیاه تبدیل می کنیمیم ان اصحاب الكهف كانوا من عجبا. آیا گمان کردی که, اصحاب که از و رقیم از جمله نشانه‌های شگفت انگیز ما بودهاند؟ <تصفيق> <مسؤس> از اول فتیت الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدن که رحمة و هیئ لنا من امرنا رشدا یاداور آنگاه که آن جوانان به غار پناه بردند و گفتند پروردگارا ما را از سوی خود رحمتی اتا کن و راه نجاتی برای من فراهم ساز على في الكهف عددا. پس ما پرده های خواب را در غار بر گوش هایشان زدیم و سالها در خواب فرو رفتند ثم بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا سپس آنها را برانگیختیم تا بدانیم کدام یک از آن دو گروه مدت ماندن خود را بهتر حساب کرده است نحن نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ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 وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا الىن شططا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 لولا یأتون عليهم بسلطان بیل فمن اظلم من من افترا علی الله کذبا این قوم ما معبودهایی جز خدا انتخاب کرده اند چرا دلیل آشکاری بر این معبودان نمیآورند. چه کسی ستمکار است از آن فردی که بر خدا دروغ ببندد؟ و این اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأو الى الکهفی انشر لكم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 وراه راه آسایش و نجات از این امر را برای شما فراهم میسازد و تر الشمس اذا طلعت تذاور عن کهفهم ذات اليمین و غربت تقربهم ذات الشمال و هم فی فجوت من ذلك من آیات الله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 این از آیات خداست هر کس را هدایت کند پس او هدایت یافته واقعی است و هر که را گمراه کند سرپرست و از راهنمایی هرگز برای او نخواهی یافت و, و هم ای وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِقٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَحْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رعبا. و اگر به نگاه می کردی می در حالی که آنها خفته بودند و ما آنها را به سمت راست و چپ گرداندیم، و سگ آنها دستهای خود را به حالت پاسبانی بر دهانی غار گشوده بود اگر به آنها نگاه میکردی قطعا فرار می‌کردی، و تو از آنها سخت می‌ترسیدی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْطَ يَوْمًا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 این هم این یظهرو علیکم او یعیدوکم سی ملتهم ولن تفلحو ایدن ابدا به اگر آنها بر شما دست یا بند میکنند می یا شما را به آین خیش باز میگردانند و در آن صورت هرگز رستگار نخواهید شد وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حقيق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا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 هنگامی که مردم میان خود در این باره نزاع میکردند، پس گروهی گفتند بنایی بر آن بسازید پروردگارشان از آنها آگاهتر است برخی دیگر که قدرت به دست داشتند گفتند بر قار ایشان پرستشگاهی میسازیم. يَقُولُونَ ثَلاثَةُ الرَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ گروهی ربي بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهرا ولا منهم أحدا خواهند گفت آنها سه نفر بودند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 پس در باری آنان گفتگوی مختصر و ساده داشته باش و از هیچ کس در باری آنها سوال مکن. ولا تقولن لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ و هرگز در هیچ چیز نگو من فردا آن را انجام می دهم.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 امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشنتر از این هدایت کند بالا بی تووف کهففیمثلاث می سینینا و, و آنها مدت سیصد سال در غارشان درنگ کردند و نه سال نیز بران ابزودندقولله هو اعلم و بمالمبی له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احد ای پيامبر بگو خداوند از مدت ماندنشان در غار آگاه تر است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 و با کسانی باش که پروردگار خود را صبح گاهان و شام گاهان میخوانند، و تنها وجه او را میطلبند و هرگز به خاطر زیبرهای دنیا چشمانت از آنها برمگیر و پیروی نکن از کسانی که دلهایشان را از یاد خود غافل ساخته ایم و هوای نفس خیش را پیروی کردند و کارهایشان از حد گذشته است. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتبنا للظالمين نارا أحاط بهم سرابقها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 أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أثائر من ذهب ويلبسون. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبَرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَتْ وَحَسُنَتْ آنها کسانی هستند که بهشتهای جاویدان از آن ایشان است. بهشت هایی که نهرها از زیر کاخ ها و درختان انجاری است، در آنجا با دستبند بندهایی از طلا آراسته می شوند و لباسهایی فاخر سبز رنگ از حریر نازک و زخیم دربر می کنند، در حالی که بر ها تکیه زده اند، چه پاداش خوبی و چه منزل نیگو و خوبی است. و اضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب و حسفناهما وجعلنا و جعلنا بینهما زرعا به ای پیامبر برای آنها مثالی بزن مثال آن دو مرد که برای یکی از آنها دو باق از انواع انگورها قرار دادیم و گرداگرد آن دو باغ را با درختان نخل پوشاندیم و در میان آن زراعت قرار دادیم. كُلَّ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. هر دو باغ می به آورده بود. می بهای بسیار و چیزی فرو گذار نکرده بود. و میان آن دو باغ نهر بزرگی جاری ساخته بودیم و کان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اثر منك ما لن نفرا صاحب این دو باغ های بسیار و درآمد فراوانی داشت پس به همین خاطر با دوستش در حالی که با او گفتگو کرد گفت من از لحاظ ثروت از تو بیشترم و از لحاظ نفرات نیرومندترم و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن طبییدنگگینی ابدا و در حالی که به خود کار بود در باغ خیش داخل شد و گفت من باور نمی کنم هرگز این باغ نابود شود. و ما اظن ساعت قاعمتا ول ارددت الى ربی لعجدن خیرا منها منقلبا و باور نمی که قیامت برپا گردد و اگر به سوی پروردگارم بازگردانده شوم قطع ان جایگاهی بهتر از این خواهم یافت قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا دوسته وی در حالی که با او گفتگو می‌کرد به او گفت آیا به آن کسی که تو را از خاک سپس از نطفه آفرید آنگاه تو را مردی کامل قرار داد کافر شدی لیکن الله ربی ولا اشرک بربی لیکن من میگویم الله پروردگار من است و هیچ کس را شدی که پروردگارم قرار نمیدهم ولولاء اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك ما لو وولدى چرا هنگامی که به واق خیش وارد شدی نگفتی ماشاءالله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 عليها حسبانا عليها حسبانا من السماء فتصبح زلقا. پس امید است که پروردگارم بهتر از تو به من بدهد و بر باغت آفتی از آسمان فرو فرستد تا به زمینی بیگیاه گیاه لغزنده ای تبدیل گردد او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا یا آب آن در عمق زمین فرو رفته تا هرگز نتوانی آن را به آوری و احیط بثمری فأصبح يقلب کفیه علاما انفق فيها و هی و هی قاویت علی عروشها و یقول یا لیتنی لم اشرک بی احدا سرانجام عذاب الهی فرا رسید و تمام میبه را در بر گرفت و نابود شد و او به خاطر حزینه هایی که صرف آن کرده بود پیوسته دست را به هم میمالید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 وأقرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به لبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح.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 المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا املا مال و فرزندان زینت زندگی دنیاست و کارهای ماندگار شایسته نزد پروردگارت بهترین ثواب دارد و بهترین امید است ویوم یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتا و حشرناهم, حشرناهم فلم نغادر منهم احدا و بیاد روزی که کوها را به حرکت در و زمین را آشکار و صاف میبینی همگان را گرد میآوریم و اهدی از آنان را فرو نمیگذاریم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم أنلن نجعل لكم موعدا و ایشان به صف بر پروردگارت ارضه میشوند و به آنها میفرماید همگی نزد ما آمدید همان گونه که نخستین بار شما را آفریدین بلکه شما گمان می کرید. ما هرگز موعدی برای شما قرار نخواهیم داد ووضع الكتاب فتر المجرمین مشفقین من ما فيه ویقولون یا ویلتنا ما لیهذا الكتاب لا يغادر صغيرته ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عمل حاضرا ولا يضل مربك احدا وكتاب نامی اعمال در آنجا ظاهر دمی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 آیا او و فرزندانش به جای من دوستان خود میگیرید در حالی که آنها دشمن شما هستند ستمکارند چه جای گزینه بدی دارند ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما ما كنت متخذ اتخذ من آنان را به هنگام آفرینش آسمانها و زمین و نه به هنگام آفرینش خودشان حاضر نکردم و من هیچ وقت گمراه کنندگان را دستیار و مددکار خود قرار نمی دهم و یوم یقول نادو شرکائی الذین دعنتم فدعوهم فلم فدعوهم فلم یستجیبو لهم وجعلنا بینهم موبقا و بیاد بیاورید روزی را که خداوند می شریک هایی را که برای من میپنداشتید بخوانید پس آنها را بخوانند ولی اجابتشان نکنند و ما در میان این دو گروه هلکتگاهی قرار داده ایم.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 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ من مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا و در این قرآن هر گونه مثلی برای مردم بیان کرده این ولی انسان بیش از هر چیز به مجادله پردازد وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يؤمنوا إِذْ جاءهم الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا ربهم إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا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 و یجادلو الذین کفرو بالباطل لیدحضو به الحق واتخذوا اتخذو آیاتی و ما و ما پیام بران را جز بشارت دهنده و هشدار دهنده نمیفرستیم و کسانی که کافر شدند همواره به باطل مجادله می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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن یفقهوه وفی آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا و چه كسی ستمكارتر از آن كسیاست که به آیات پروردگارش پن داده شود سپس از آن روی گرداند و آنچه را با های خود پیش فرستاد فراموش کرد ما بر دلهای آنان پرده های افکندیم تا نفهمند و در گوش هایشان سنگینی قرار دادیم. و اگر آنها را به سوی هدایت بخانی پس هرگز هدایت نمی شوند و ربک الغفور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 قط ان هر زود تر اذاب را برای آنها میفرسد، ولی برای آنها موعدی است که هرگز از آن راه فراری نخواهند داشت. و تِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَا هُمْ لَمْ ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا به این شهرها و آبادیها هنگامی که ستم كردند حلاکشان نمودین و برای هلاكتشان معدی قرار دادین و ایز قال موسی لفتاه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبه و بیاد بیاور هنگامی را که موسی به جوان خدمتکار خود گفت من دست از جستجو بر نمی دارم تا به محل برخورد دو دریا برسم هر هرچند مدت طولانی به راه خود ادامه دهم فلم ما بلغا مجمع بینه ما نسیا فِي الْبَحْرِ تبیلهو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 قال انك لن تستطيع معي صبرا خضر گفت تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی و كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا می میتوانی بر چیزی که به راز آن آگاه نیستی شکیبا باشی قال ستجدنی ان الله صابرا ولا اعصی موسا گفت بخواست خدا مرا شکی خواهی یافت و در هیچ کاری تو را نافرمانی نکنم قال فا اتَّبَعْتَنِي اتبعتنی فلا عَنْ عن شیئی أُحْدِثَ لَكَ منه ذِكْرًا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 آیا نگفتم تو هرگز نمیتوانی با من شکی کنی؟ قال لا تؤاخذنی بما ما نسیت و لا من امری عسرا موسی گفت به خاطر آنچه فراموش کردم مرا معاخذ مکن و از این کارم بر من سخت مگیر فان طلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا پس به راه خود ادامه دادند تا هنگامی که به نوجوانی برخوردند پس خضر او را کشت موسی گفت آیا انسان پاکی را بدون آنکه کسی را کشته باشد کشتی به راستی کار زشتی انجام دادی